بسم الله الرحمن الرحیم در کتاب تصریف زنجانی قواعد صرفی تمام شدن رسیدین به دو نون خفیفه و فقیله سبک و سنگین معنی لغوی نون تأکید بر سر مازی نمیاتون تأکید هست دیگه گذشته که گذشته بر سر حال هم نمی آید بلکه بر فعل مستقبل می آید مستقبلی که معنی طلب یا شبهش باشد خودش توضیح داده در اولین خط ويلحق الفعل غير الماضي والحال و ملحق می شود نون تأكید بفعل غیر ماضی و حال چه ملحق می شود؟ نونانی لتأكید نونان مخشش اینجا فاعل هست یعنی ملحق می شود بفعل البته غیر ماضی و حال نون تأكید احداهما خفیفتون ساکنتون یکی از اون دونون خفيفة وصاكنهاست والأخرى ثقيلة مفتوحة والديجاري ثقيلة هست فاتحدارة إلا مجر يعني إن نون فاتحداري هست مغر فيما تختص به مجر مغر دارون سيغهايك تنفرد به ونسيغها فقط نون سقیله اونا یاد دیگه نون خفیفه روشون نمیاد اونها چیسی غایه هستند که فیما تختص به خودش میگه و هو فعل الاثنین و جماعت النساء تصمیه و جمع مونس یعنی نون تأکید سقیله فتحه دارد مانند لینصرن نه مگر در تصمیه ها و در جمع مونس ها تصمیه ها چار هستند و جمع معنس دو دوتا فهی مقصورتون فیهما ابدا همیشه در این سیغه ها یعنی در تصمیه و در جمع معنس همیشه کسره دارد نون سقیله فتقول مانند اذهبانی این مال چی هست؟ للاثنین مال تثنیه بود یا جمع معنس اذهب نانی در جمع معنس هم مثالش هست که کسره داره لنسوتی این برای جمع معنس بود این مثال فتودخلو علفا بعد نون الجمع المعنس حکم دیگه ای که در رابطه با نون تأکید وجود دارد این هست که در جمع مؤنث چون نون جمع معنس رو نمیشه حذف کرد و زمیر هست تعداد نونها هم زیاد میشه یک علیفی بین نون جمع معنس و نون تأکید میاد لتفصل بین نونات فاصله بیاندازه بین نونها مثلا یعنصرنا جمع معنس هست اگر بخوایم نون تاکید رو بیاریم چی بگوییم؟ لینصرنا نی. نی بین نون جمع معنس و نور تأکید علف می آید و لا تدخل الخفیفته که در رابطه با نون تأکید بیاموزیم این هست که بر جمع موننس و بر تصمیه ها نون خفیفه نمی نور نون خفیفه بر تسلیه ها و بر دو جمع مؤنث فارد نمی شود کلن سیغه های فیلم بزاره تا می باشند چارتا تسلیه هند می مونه تا. دو تا دوتا جمع موننس می مونه هشتا یعنی نون تأکید خفیفه فقط در هشت سیغه می آید ولا تدخلهما الخفيفة لأنه يلزم التقاء التقاء الساكنين على غير حده ترى كل اگر ما نون خفيفه درين صيغه بها وريم التقاء ساكنين پیش میاد جاي كجائز نيست جاي كقياسا جائز نيست شو بيبيينيد يعني ينصراني زمانی که ما نون تأکید رو بیاریم نون خود اعرابی هست میشه یعنی یعنصرانی این نون هست میشه نون تأکید رو بیاریم لینصران نه این شد نون سقیله اما اگر نون خفیفه رو بیاریم میشه لینصران هم نون ساکن میشه هم علف میشه التقای ساکنه دوتا ساکن جمع میشن به هم که جایز نیست اینجا چرا؟ چه جاهای جایز است؟ فإن التقاء الساكنين إنما يجوز إذا كان الأول حرف مد والثاني مدغم مدغم حب جائز هست إنما يجوز جائز هست إذا كان الأول حرف مد زماني كأولين حرف مد باشه حرفها مد ستا هست وابو ألف يا و ثانی مدغم ولی دومی هم مدغم باشه ادغام شده باشه یعنی ادغام چه زمانی پیش میاد دو تا حرف هم جنس باشن اینجا ما با یک نون داریم پس اینجا مدغم نیست در لئن سران اگر میخوام نون خفیفه روش بیاوریم که جایز نیست شرایط التقای ساکنن وجود ندارد. حرف اولی الف هست مده هست ولی حرف دومی بگه مدغم نیست نحو دابه مانند دابه در دابه التقاء ساکنن پیش اومده دابه الف ساکنه بای اولی ساکنه ولی اینجا التقاء ساکنن جایزه چرا؟ چون با مدغم هست دو تا با در هم دیگه شدن پس احکامات احکامات نون تاکید رو تا اینجا کلین بیان کرد حکم دیگر و تحذف من الفعل معهما النون التي في الامثله و وحذف میشه از فعل با آن دو یعنی با نون تأكید نونی که در امثله خمسه وجود دارد امثله خمسه چه هستند تفصیلا یعنی یعنی سرونه تنصرانی تنصرونه تنصرینه بدون تکرار پنج تا هستند به این خاطر بشیم میگن خمسه پس یفعلانی تفعلانی یفعلون تفعلونه و تفعلینه که در کتاب آورده میگه در این پنج تا سیغه زمانی که نون تأکید رو بیاوریم نون امثلی خمسه دیگه حس میگرده یا ذریبو مشلا یعنی صرو مشلا یعنی یعنی نور خودش هست می‌گرده نور تأکید میاد یعنی سورانی خب دو خفیفه که تو این صيغه مثنا نی دیگه قانون بعدی چهست و تحذف وا و تفعلونه میگه وا در دو جمع مذکر حاضر و غائب حصف می گردد یعنی سرونه و تنسرونه یفعلونه و تفعلونه زمانی که نور تأکید بیاوریم واب حصف می شود ولی خیلی راحت هست شیوه تشخیصش بیردید لیزر... یعنی ل... ل... سرنه این مفرده یعنی سرنه این جمع هست واب شد ذمه باقی مونده سر جاش تا دلالت برحصفه وار کند پس لا سرنده لایانصرران لا سوون نه در تنصرونهها و تفونه یعنی هم مبحث می گردد میشد لتن سرون نه تف آ ل نه دیگه چه جایی و یا او تفلی نه و یاع تفلی نه ینیای مخاطر مفراد هم حس می از زمانی که نون تأکید بیاید چه سقیله چه خفیفه فرقی ندارد تنصوری نه لتنصورنه کس داره داره لتنصورنه اینها مگر یک جا این واب در نوتلها حصف نمیگردد گردد واو. واو جمع مذکر ویای مفرد مهندس مخاطر حس می گردن چه زبان ال افت هم ما قبله ما زمانی که فتحه داشته باشد ما قبل آن دو، یعنی ما قبل واب و یا در مطل تخشا مطل عالفی هست در مزاره در تخشا چون قبل واب در جمع مذاکر، فته وجود داره واو دیگه حسو نمیشه میگویم لا تخشاون نه لا تخشه ون نه در حالی که در صحیح در جاهای دیگه هست میشد شد لا ت نه می گفتفتیم لا ت نه اصلا نمیشه گفت. پس لا تخشاون نه و تخشا نه این هم مفرده مع است هست. و مثال دیگه جمع مذکر هست بینیم که واو حسف نشده ترهیه نه مفرد موانس هست که بینیم یا حسف نشده علتش چه هست؟ علتش این هست که قبل از واو و یا در این سیغه یعنی دوتا جمع مذکر و مفرد موانس اگر قبل از این یا و فتح داشته باشد و یا نمیشوند نمی قائد رو کامل آورده قائده دیگر تمام احکامات نون تأكید رو بزیبای بیان میکند و يفتح مع النونين آخر الفعل میگه فتحه میگیرد همراه دنون تأكید آخر فعل اذا كان فعل الواحدی والواحدة الغائبه زمانی که فعل مفرد مذکر واحد منظور مفرد واحد هم مفرد مؤنث زمانی که فعل مفرد مذکر مفرد مذکر باشه و مفرد مؤنث غائب مانند یعنی رن خود راک آخرین حرف هست با آمدن نون تأکید فرقی ندارد چه نون سقیله مانند لینسورن چه با نون خفیفه مانند لینسورن در هر دو حالت آخر فعل فتح میگرد در مفرد مذکر در مفرد مذکر و در مفرد مونس غایب لینسورن این مفرد مذکر غایب بود مفرد مذکر حاضر لتنسورن نه اما در مونس نه مونس فقط غائبش حاضرش دیگه کسر داره ببینید لتنسرن نه لینسرن نه لینصرن نی نه لتنسرن نه این هست مفرد مونس غائب آخره فعل فتحه داره خودنون هم فتحه داره که قبلا توضیح دادیم خودنون چه جاهای کسره میگیرد پس آخر فعل در این سیغه هایی که نام برد یعنی مفرد مزکر چه حاضر چه غائب در مفرد مؤنث غائب فتح میگیرد و یودام و ایداکان فعلا جماعت و آخر فعل زمه میگیرد در جمع مزکر مانند انده لیانسرون نه لتنسو نه که می آخر فعل که در یانسرو زماجرفت لا ينسون لا تنسونه ويكسروا إذا كان فعل الواحدة المخاطبة ودار مفرد مؤنث مخاطب كسر ميجرد لا تنسو فتقول في أمر الغائب مؤكدا بالنون الثقيلة الآن جاء مثال شو ها وردت فدار أمر الغائب كتأكيد ده اس بادو الثقيلة شو لين لا ينسرنّا لا ينسرانى لا ينسرونا لا لا لا ينسر لا لا لا لا این بود صرف کامل فیلموزاره با نون تحکید سقیله تمام رو تا اینجا بیان شد پیاده شدهاند. و اما با نون خفیفه لینسورن لینسورون لتنسورن در هشت هش سیغه با هر هشت سیغه بگویم اینجا با نون امر آورده سی سیغه شروع آورده سریقه بعدیش که حاضرن خب صرفش کنیم با لا یان دیگه روی مصنا نیاد میشه لا یان سورون لتن سوران لتن دوباره لتن سورون لتن سوران فقط روی این هشت دیگه دوره تأكيد ثقيل بيات تقول في أمر الحاضر بوكدا بالنون الثقيله در أمر حاضري كي تاكيد شده بالنون الثقيله تقولين ميقولين انسرنا انسران دي انسرنا انسريننا انسران دي انسرنا شش صيغه اصلا تمام قواعد رك بيان شده كتاب اجز راسل وعفيفه موقع كروي حاضر بياد مش انسرن اون اون بیشن ستا چرا شدن ستا؟ چون کل عمر حاضر تا سیغه هستن رو مسانه ها که نیاد دو سیغه کم بیشن می میره چار تا بعدش رو جمع مونس هم نمیاد یه سیغه دیگه کم شد مونده سه سیغه یعنی مفرد مذکر حاضر مفرد مونس حاضر و جمع مذکر حاضر پس مفرد مذکر حاضر مف... جمع مذکر حاضر و مفرد مونس حاضر روی دستی که امر حاضر فقط نور خفیفه میاد و قص على هذا نظائره و قیاس بکن بر این امثال رو اینها بودن قوائل نور تاکید زمانی که برسر فعل مزارمی اومد بحثی بسیار ساده موفق و پیروز باشید